اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابلهب تب به نام خداوند بخشنده بخشایشگر بریده باد هر دو دست ابولهب ما اغنى عنه ماله وما كسبه هرگز مال و ثروتش و, و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید وسيصلن نار ذات لهب و به زودی وارد آتشی شعل ور و پر لهیب می شود و امراته حماله الحطب و نیز همسرش در حالی که هیزم کش است و در گردنش تنابیست از لیف خرما